ذوره محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Necessary. به نام الله که بخشاگنده و رحمت است کسانی که به حقایق کافر شدند و مردم را از راه نجات بخش الهی باز خداوند اعمالشان را باطل می کند اما کسانی که به حقایق ایمان آورده و عمل کردی نیک و شایسته دارند و به قرآن حقی که از جانب پروردگارشان بر محمد نازل شده ایمان دارند خداوند گناهانشان را می و کارهایشان را اصلاح می و این به خاطر آن است که اهل کفر از باطل تبعیت می‌کنند ولی اهل ایمان از حقی که از جانب پروردگارشان است پیروی نماگند خداوند این چنین حقایق زندگی مردم را برایشان ایشان توصیف می‌کند هنگامی که در میدان جنگ با کافران روبرو شدید گردنهایشان را بزنید تا خوب آنها را در هم بکوبید اسیران را محکم ببندید سپس یا بر آنها م نت آزادشان کنید و یا در لببال آزادیشان فلگه بگیرید تا آنگاه که جنگ پایان پذیرد. بدانید اگر خدا میخواست خودش از آنها انتقام می گرفت. اما اراده کرده تا برخی از شما را به واسطه برخی دیگر مورد امتحان قرار دهد. کسانی که در راه خدا کشته شدند خداوند، هرگز عمل کردشان را نابود نمی‌کنند هدایتشان خواهد کرد و کارهایشان را اصلاح می نماید و به بهشتی که قبلا برایشان وعده کرده واردشان می‌کند یا ای اهل آمنوا ان الله ويثبت اقدامكم ای اهل ایمان اگر خدا را یاری کنی، خدا نیز شما را یاری خواهد کرد و گامهایتان را استوار می دارد. نابودی بر اهل کفر با. زیرا خدا اعمالشان را نابود کرد. و این به خاطر آن است که آنها از که خدا نازل کرده کراحت داشتند. سرانجام نیز خدا اعمالشان را از بین برد. آیا مردم در زمین سیر نمی کنند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنها زندگی می کردند چگونه بوده است. خداوند آنها را حلاک کرد. اهل کفر نیز آقبتی آنچنان خواهند داشت. اینچنین خداوند دوست و تکیگاه اهل ایمان است. حالان که کافران هیچ تکیگاهی ندارند. خداوند کسانی را که به حقایق ایمان آورند و عمل کردی مفید و شایسته داشته باشند به بهشت هایی که نهرها در آن جاری است وارد می‌نماید و کسانی که به حقایق گشتهاند از متاع زودگذر دنیا بهره می‌گیرند و همچون چهار چهارپایان می‌خورند و سرانجام آتش دوزخ جایگاهشان خواهد بود چه بسیار شهرهایی که از شهر تو که از آنجا بیرونت کردند قدرتمندتر بودند و ما همه آنها را هلاک کردیم و هیچ یاوری نداشتند آیا کسی که دلیل روشنی از جانب پروردگارش دارد همانند کسی است که عمل کرده بدش در نظرش زیبا جلوگر می شود و از هواهای نفسانی پیروی می کند؟ وصف بهشتی که به نگاه دارندگان حرمت حریم الهی بعد داده شده است این گونه است نرهایی از آب زلال نرهایی از اصل مصفا و برای آنها در بهشت از تمامی میبه موجود است و از همه بهتر مغفرتی از جانب پروردگارشان آیا چون این کسانی همانند آنهایی هستند جاو دانه در آتش و آب سوزنده خورنده میشوند که اعضاء آنها را پاره پاره میکند گروهی از آنان به سخنان تو گوش فرامیدهند و آنگاه که از نزد تو بیرون میروند از روی تمسخر به اهل دانش میگویند این مرد همین حالا چه میگفت آنها کسانی هستند که خداوند قلبهایشان را از درک حقایق غیر نموده است زیرا از هواهای نفسانیشان تبعیت می کنند و کسانی که هدایت یافتند بیش از پیش بر هدایتشان می و تبای مورد نیازشان را عطا می کند. آیا آنها جزین انتظار دارند که ناگاه قیامت آمد بر پا شود؟ حالان که از همکنون نشانه آن آمده است وقتی آنها را در بر بگیرد دیگر پند دادنشان چه سود خواهد داشت فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنات والله متقلبكم ومثواكم بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست از گناه خود و گناه مردان و زنان اهل ایمان استغفار کن که خدا هم محل حرکت و هم قرارگاه شما را میداند و اهل ایمان میگویند چرا سوره نازل شود. پس هنگامی که سوره محکمی که در آن سخن از جنگ آمده نازل می شود چهره کسانی را که در قلبشان بیماری کفر است میبینی که از ترس چون انسان در آستانه مرگ به تو می نگرند. پس همان مرگ و نابودی برایشان سزاوارتر است حال اگر اطاعت کنند و سخن نیکو بگویند برایشان بهتر است و چون تصمیم به جنگ گرفته شود اگر با خدا صادق باشند باز برایشان بهتر خواهد بود آیا اگر سرپیچی کردید و از حق روی برگرداندید جز این است که زمین را به فساد و تباهی میکشید و و های خیشابندی را بعد می نمایید. آنها کسانی هستند که خدا نفرینشان کرده و گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور نموده است و درک حقایق نمی کنند. چرا در گرآن تدبر نمی کنند؟ شاید بر قلبهایشان گفل کسانی که به گذشته زشت و کفرارودشان برمیگردند، گردند آن هم بعد از آن که هدایت برایشان تبیین شده است بدانند که شیطان اعمال پلیدشان را در نظرشان زیبا جلوگر کرده و آنها را با آرزوهای دور و دراز فریفته است این به خاطر آن است که آنها به آن گروه که از آیات الهی کراهت داشتند گفتند در بعضی از کارها از شما اطاعت خواهیم کرد بدانید خداوند اسرار همهشان را میداند چه حالی خواهند داشت وقتی فرشتگان مرگ جانشان را میگیرند بر صورت و پشت هایشان میزنند این به خاطر آن است که از آن چه خدا را به خشم میآورد آورد پیروی میکردند و از خوشنودی خدا کراهت داشتند سرانجام خداوند عمل را نابود و بی اثر ساخت آیا آنهایی که در قلبهایشان بیماری کفر و نتاقه است پنداشده هند که خدا هرگز کینه را که در دل نهان کرده اند، آشکار نخواهد کرد اگر بخواهیم آنها را به تو نشان می دهیم، تا آنها را از چهره هایشان بشناسیم هرچند که از لحن سخنشان آنها را می شناسیم. خداوند از تمامی عمل کرده شما مطلع است ما همه شما را امتحان میکنیم تا مشخص نماییم مجاهدان و صابران شما چه کسانی هستند تا اخبار و حدیثتان را بیازماییم این <تصفيق> الذین کفروا وصدوا عن کسانی که به حقایق کافرند و مردم را از راه نجات بخش الهی باز می‌دارند و با آنکه راه هدایت برایشان آشکار شده با پیامبر مخالفت می‌برند. هیچ آسیبی به خدا نمی و به زودی خداوند اعمالشان را نابود و بی اثر می سازد. ای اهل ایمان، از خداوند و پیامبر اطاعت کنید و اعمالتان را با دست خودتان باطل و بی ارزش نکنید. کسانی که به حقایق کافر شدند و مردم را از راه نجات بخش الهی باز داشتند و سرانجام با کفر از دنیا رفتند خداوند هرگز آنها را نمی در راه حق سستی نکنید تا دشمنان را به ذلت بار دعوت نکنید حال که شما برترید زیرا خداوند با شماست و از اعمال شما هرگز نمی کهان. بدانید که زندگی دنیا فقط بازیچه و سرگرمی است چنانچه به حقایب ایمان بیاوری و حرمت پروردگارتان را نگاه دارید خدا نیز پاداش شما را عطا خواهد کرد و خدا انبال شما را نمیخواهد هرچند اگر انبال شما را طلب کند و با اصرار هم طلب کند شما بخل می خداوند این چونین بخل و های شما را آشکار کند آگاه باشید شما همان جماعتی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت شده اید اما بدعی ای از شما بخل می‌ورزند بدانید هر که بخل بورزد به ضرر خود بخل ورزیده است زیرا خداوند بی نیاز است و این شما هستید که محتاجی و چنان که از حق سرپیچی کنید خداوند مردم دیگری را به جای شما میابرد که مثل شما نخواهند بود والله الغنی و انتم الفقراء و این تتولو یستبدیل قوم غیرکم ثم لا یکونو امفالکم صدق الله العلی العظیم راست خداوند بلند مرتبه بود عزیم کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و سلم